این داستان یک خواهر و هفت برادر این داستان نقلی است از بسا که کازمی از اهواز. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود در زمانهای خیلی قدیم زن و مردی بودند که همدیگر را خیلی دوست داشتند چرا؟ چون زن هفت پسر برای مرد به دنیا آورده بود و همسایه ها برای داشتن این هفت پسر به اونا خیلی حسودی میکردن؟ یه روز برادرا که بزرگ شده بودن به ممانشون گفتن باید برامون یه خواهر به دنیا بیاری؟ اگه برامون یه خواهر به دنیا نیاری ما از اینجا میریم مدت ها گذشت مادرشون باردار شد و وقت زایمانش رسید پسرا گفتن ما میریم شکار اگه بچه دختر بود یه لنگ کفش به در آویزون کن اگه پسر بود تیر و کمون اگه پسر بود دیگه ما بر نمیگردیم خونه اینو گفتن و رفتن بالاخره مادر دختری زیبا که صورتش مثل خورشید می دنیا آورد و لنگ کفشی به در درخونه آویزون کرد. اما همسایه ها که با اونا لج بودن لنگ کفش رو با تیر و کمون عوض کردند. وقتی را به خونه برگشتن و تیر و کمون رو از در آویزون دیدن خیلی ناراحت شدن. افسار اصباشون رو کشیدن و رفتن و دیگه به خونه برنگشتم. مادر که خیلی منتظر بود خوشحالی پسراشو ببینه خیلی انتظار کشید اما خبری از اونا نشد که نشد دختر زیبا که اسمش رو سر گذاشته بودن بزرگ شد و وقتی شنید هفتا برادر داشته سراغشون از مامانشون گرفت مادرش هم حال و حکایت رو براشون تعریف کرد. سرو نازم که خیلی مشتاق دیدار برادرش بود، بقچش رو بست و برای پیدا کردنشون را افتاد رفت و رفت و رفت تا رسید به یه دشت. وسط دشت خونه بسیار بزرگی را دید. رفت سمت خونه و در زد ولی کسی خونه نبود. سروناز که خیلی خسته بود، رفت توی خونه تا کمی استراحت کنه که یه دفعه برادرها وارد شدن. سروناز ترسید و داخل تاپوی توی حیات قایم شد. تاپو خمره بزرگی که توی اون آرد و گندم نگه می دارن. یکی از پسرا گفت، آخ خستم، اگه یه خواهر داشتم حالا یه آب میداد دستمون رو برامون قضا درست می یکی دیگه گفت اگه مادرمون یه دختر به دنیا می آورد هم. یکی دیگه گفت اگه اون روز به جای تیر و کمون لنگ کفش از درخونه آویزون بود حالا این حال و روزمون نبود سر که اون حرفا رو شنید فهمید اونا برادراش هستن. از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید. اما نمی خواست یه دفعه خودش رو نشون بده. صبح که شد برادران یکی یکی به شکار رفتن. سروناز ناز از تاپو بیرون اومد و تموم کارای خونه رو انجام داد. غذا پخت، آب و جارو کرد و غروب که شد رفت دوباره توی تاپو قایم شد. برادرها که به خونه برگشتند با دیدن خونه و تمیز و غذاهای آماده از تعجب دهنشون بازموند و هرچی صدا کردن که کی این کارا را انجام داده هیچ جوابی نشنیدن یه روز دیگه هم گذشت با سروناس همه کارهای خونه رو انجام داد و توی تاپو قایم شد برادرها که دیگه نمیتونستن دست روی دست بذارن، تصمیم گرفتن بفهمن بالاخره چه کسی این کارا رو داره انجام میده. شب اول، نوبت برادر بزرگتر بود. دست برادر بزرگتر رو زخمی کردن و نمک روی زخمش پاشیدن تا خوابش نبره. اما برادر بزرگ وقتی درد زخمش کمتر شد، خوابش برد. حتی در طول روزم که سر و نازداشت به کارای خونه می رسید اون خواب بود. شبای بعد هم برادره دیگه از پس خواب بر نیمدن تا اینکه شب هفتم نوبت برادر هفتم رسید. زخمش رو عمیق زدن و نمکی بیشتر از قبل روی زخمش پاشیدن تا مثل بقیه برادراش خوابش نبره. بناخره دمدمای صبح برادر هفتم دید از تاپو و زیبا با چشمایی به رنگ فیروزهی و موهایی مشکی تر از شب بیرون اومد و مشغول تمیز کردن خونه شد. برادر هفتم از اون پرسید تو کی هستی؟ آدمی زادی؟ انسانی؟ جنی؟ چی تو؟ کارای ما رو تو انجام میدی؟ سروناز گفت نه انسمو نه جنم من خواهرتونم برادر هفتم که از خوشحالی توی پوستش نمیگنجید همه برادرها رو خبر کرد برادرا وقتی فهمیدن سروناز خواهرشونه تعجب کردن و گفتن ولی مادرمون که پسر به دنیا آورده بود تو چطور خواهرمون میشی ما که خواهر نداشتیم سر ماجرا ماجره رو برای برادراش تعریف کرد برادرا وقتی به ماجره پی بردن از دیدن خواهرشون حسابی خوشحال شدند. جشن گرفتن و از اون خواستن پیششون بمونه برادر بزرگتر به سروناز گفت باید خیلی مواظب باشی و از خونه بیرون نری چون اون بیرون یه آلازنگی زشت و بد ترکیب هست که از دهنش آتیش بیرون میزنه و آشق خوردن گوشت آدمیزاده نباید چشمش به تو بیفته سروناز قبول کرد مدت ها خواهر و هفت برادر در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند. برادرا به شکار میرفتند، سروناز به کارای خونه و سرواز برادراش میرسید تا این یه روز وقتی برادرها به شکار رفتن و سر خواست قضا به دید اجاق هیزم نداره. چاره ای نداشت جز اینکه برای آوردن هیزم از خونه بیرون بره. راه افتاد به سمت جنگل که یک دفعه از پشت درختا صدای وحشتناکی شنید. ترسید و با خودش گفت نکنه حالا زنگی باشه. همون موقع آلازنگی فریاد زد بو میاد بوی آدمی زاد میاد سر بناز تا سرش رو چرخند آلازنگی رو بالای سرش دید رنگ از صورتش پرید دندوناش از ترس و هم میخوردن و صدا میکردن زنگی گفت دستت رو بیار جلو تا توش آتیش بذارم سر با ترس و لرس دستش رو جلو برد آلازنگی هم دستش رو چنان گاز گرفت که خون از اون بیرون ریخت. سروناز از حال رفت و روی زمین افتاد. شب که شد، هفت تا برادر خسته و گرسنه از شکار برگشتن و توی راه دیدن که خواهرشون بیهوش روی زمین افتاده. خیلی ناراحت شدن و حد زدن که کار کار آلازنگیه. سروناز رو به خونه بردن و ازش مراقبت کردن تا حالش بهتر شد. از اون به بعد برادرا دیگه بیشتر مراقبه خواهرشون بودن. مدت ها گذشت سروناز تصمیم گرفت به زندگی برادراش سر و سامونی بده و براشون آستین بالا بزنه اما اونا قبول نکردن و گفتن تا تو رو داریم غم نداریم سروناز اونقدر دعا کرد تا خدای هفته آسمون براش تا کبوتر فرستادن که تبدیل شدن هر کدومشون به یه زن زیبا برای برادراش اوایل، زن برادرها سروناز رو خیلی دوست داشتن موهاش رو میبافتن براش لباس میدوختن و بهش هدیه میدادن تا اینکه مدتی گذشت و حس کردن که شوهراشون سروناز رو از اونا بیشتر دوست داره پس به اون حسودی کردن و تصمیم گرفتن کاری کنن تا سروناز از چشم برادرا بیفته. یه روز عروسا مشک آبی رو پر از قورباغه و مارمولک کردن و از سروناز خواستن از اون آب بخوره سروناز هم از همه جا بیخبر؟ آب مشک رو تا آخر خورد و یک دفعه شکمش باد کرد و بزرگ شد سروناز با دیدن شکم بزرگش زد زیر گریه اونقدر گریه کرد تا به هقه هق افتاد وقتی برادرها برگشتن و شکم سروناز رو دیدن فکر کردن خواهرشون باردار شده خیلی ناراحت شدن نمیتونستن این ننگ رو تحمل کنن پس سروناز را از خونه بیرون انداختن سروناز با قصه فراوون راهی بیابون شد همونطور که توی بیابون آواره بود صدای نه چوپانی رو شنید سمت چوپان رفت چوپان با دیدن چهره غمگین سروناز از اون دلیل ناراحتیش رو پرسید سروناز هم ماجرا را برای اون تعریف کرد چوپان زود از یکی از بوزهاش قدری شیر دوشید و به سروناز داد. گرباقه ها و مارمولک های توی شکم سروناز بیرون پریدن و شکمش مثل روز اول صاف صاف شد. سروناز خیلی خوشحال شد. از چوپان تشکر کرد و گفت از این به بعد من مثل خواهر تو هستم. اگه قبول کنی؟ مثل خواهرت پیشت زندگی می کنم اونا مدت ها با هم زندگی کردن و سر خواهر مهربونی برای چوپان شد و چوپانم برادر زحمت کشی برای سر یه روز که پسر پادشاه سوار بر اسبش از کنار می میگذشت چشمش به سروناز افتاد و همونجا یک دل نصد دل عاشق اون شد تصمیم گرفت از سروناز خواستگاری کنه و نیتش رو به اون گفت. سروناز به پسر پادشاه گفت، اگه دوست داری و میخوای من باهات ازدواج کنم، باید اجازم را از برادرم بگیری. پسر پادشاه رفت پیش چوپان و سروناز رو ازش خواستگاری کرد. عروسی سروناز و پسر پادشاه، هفت شب و هفت روز طول کشید و بعد رفتن سر زندگیشون. روزها و ماها گذشت. یه روز که سروناز و پسر پادشاه سوار بر اسب با همراهاشون از دشت میگذشتن چشم سروناز به خونه برادرش افتاد. سروناز تا خونه برادراش رو دید دلش براشون تنگ شد. از پسر پادشاه خواست که اون رو پیش اونا ببره. پسر پادشاه هم قبول کرد. برادر وقتی خواهرشون رو دیدن خیلی خوشحال شدن و از رفتارشون با اون پشیمون شدن. سر و نازم همه ماجرا رو براشون تعریف کرد. برادرا که تازه به حسادت زناشون پی برده بودن اونا رو توی تاریکی زیر زمین انداختن. عروس که هفت و کبوتر بودن تبدیل به هفت تا کلاق شدن سرونازم از برادرش خواست تا همراه اونا پیش پدر و مادرشون برن چون پدر و مادرشون خیلی دلتنگ شده بودن همشون با هم پیش اونا رفتن و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردن دوستای عزیزم این بود داستان ما الهی که همیشه در آرامش باشین.